نماز در خانه کعبی بیشتر است یا در نسجد النبی بهبه اللہ فصل حج هست فصل حج هست و خود را برای حج آماده بیکنید بهترین جا و بهترین مکان و بهترین جا در کل عالم در کل کره خاکی سردمین مکه مکرمه هست جایی که بیت اللہ بنا شده جایی که رحمت الله رب العالمین 24 سال اونجا سرغازین هست بیت خداوندی بهترین باها خداواد مطالب فرماید که ما اونو مبارک خلی کردیم در حتی الله رب العالمین این جای مکه مکرمی رو این قدر مکرم کرده خود بیت الله رو بوسیل سکمربند اون رو حصار کرده سکمربند هست ما داریم اونجا حرم داریم بعد هل داریم بعد میقاد داریم سکمربند هست که اونجا این اعزاز بیت الله هست سکمربند دائره کرده بیت الله رو اول میقات ما اینجا زندگی میکنی محسم آفاقی کسی بخوا از میقات عبور کنه بره مکه مکرمه بدون احرام اجازه ورود نداره باید باید تشریفات خاصی با لباس خاصی وارد بشی داخل یک معدن وارد میشی باید کلاه ایمری به بکنی سوار موتوراسی با کلاه ایمنی به بکنی ماشیک میشی با کمربند ایمنی رو ببندید در پلهای میری با ماسک وارد بشی در فلان لباس خاص خودشو داره حرم یه‌تەسفیفات خاصی داره اعزاز حرم و اکرام حرم با لباس خاصی باشه کفن پوش باشه خود را سراپات تسلیم الله رب العالمین میکنه اونجا باید اول از میقات عبور میکنه اگر بدون از احرام از میقات عبور کردید یک گوسخان لازم میشه که متاسفانه امروز تبلیغات میکنه میگه هر کجا میریم دل به دست فرق اکبر است از زواران کابی یک دل بهترات ایشو آشیرها میخوان میگه همسایه گرسن داری میخاوه تو داری میری حج این تبریقات سو هستن بر علی حج خود این صحبتها گناهند نرو حج اینجا بم... همسایه کمک کن نرو حج اینجا دل به دست بیار نرو حج فلان کار رو بکن چرا پول ها رو اونجا خرج می‌کنی یک سال حج کردی مگه حج هر سال فرض هست حج هر سال فرض نیست اما هر سال فضل هست. هر سال فرد لها فرد با فرض فرد میپنه فضیلت دارد ارزش دارد سرزمین حرم سرزمینی یه هست که نبی مکرم اسلام عاشق حرم بود وقتی گفتم من خواب دیدم داخل مکه دارم وارد میشم صحابه کم دیوانه شدن گفتی ها رسول الله حرکت کن بریم برای مکه مکرمه تتواف عمره بکنید تا آخر به صلح حدیبی تمام شده این, این تبلیغات رو نکنید که حج نرو این چرا به اونهایی که نمیگی در ماشینه، دیدی اسپیدونی سوارشه، چرا به اون نمیگی پولهارو به مسکینو و غریب بدی؟ کسی داره خونه پولسا می رود رستمی کنه، چرا به اون نمیگی پولهار به فقرا کمک بکن؟ کسی داره میشمار تقری می کنه، چرا به اون نمیگی پولهار اونجا کمک بکن؟ کسی میره زیارت مشهد، چرا به اون نمیگی پولهارو به مسکین کمک بکن؟ چرا اونها پولهای دارن جاهلی بر ایاشی خرج میشن، برای لباسهای گران قیمت خرج میشن، در سفارت بیهوده خرج میشن. چرا گناه نمیگید؟ چرا به خودتا نمیگید؟ چرا داری کمک میکنید؟ نووت حج رسید اگر آقا نرو حجید اینها غلط، اینها گناه هن اینها جهارفا بسیار زشت را داران انسانها رو نسبت به یک فریزه بزرگ داران اونهار رو متنافر میکنن دار اهمیت او را فائل میآورند. در حالی که نبی مکرم اسلام الله عليه علیه وسلم چند تا حج کردن حالا سوالی مثلا چند تا حج کردن؟ نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ بعد از حجرت یک حج کرد اما قبل از حجرت قبل از این که به مدینه مناوری برند چند تا حج کردن علمان میگن که حج های بیشمالی کرده کل عمرش حج کرده چرا؟ چون اهل مکه مکرمه بر دین ابراهیمی بودن و هر سال اونها حج می کردن و هر سال خدمت حجاج می کردن نبی کریم در قبل از هجره هر حج سال حج می کرد. بعد از هجرت موقعی فراهم نشد مکه مکرمه دارال کفر بود فت نشده بود و ایام ایام نصیح بودن که روزها تغییر کرده بودن و از نبی کردن حج کردن چارت عمره هم رفتن پس مردم را از اون حرم الهی متفر بلکه بر شوق اشتوق بدید برو مکه مکرمه یک تواف دو قبول میشه قدم قدم اون اجر داره نگاه بر بیت الله اجر داره تواف کردن اجر داره دو رکعت نماز خون در بیت الله صد هزار اجر داره دور رکعت نماز داخل بیت الله بخون صد هزار اجر داره بهترین و بالاترین مقام مقام عرفات است هیچ ولی و هیچ در درو مقام نمیرسه عرفات هست. است که نبی مکرم صرا زارزار گریه می میکرد و دعا میفرمودند بیرید حج کنید شوق حج را به بکنید حرم مکی و بیت الله با اون های سیاهش از دخترهای داخل خجله زیباتر است اینقدر زیبا و اینقدر جذاب هست که 24 سا داخل حرم میبینید خستگی ناپذیره خسته نمی شید شما از نگاھ کردن لذت میبری در هیچ جا دونه اینقدر محبت نیست می داخل میشی بی قرار میشی برن حرم اون واقع واغه بره حرام میرن داخل وازه آرام نه میگیرن زوتاب داخل بیت الله داخل حرام برن داخل مسجد حرام برن کی بیت الله از صبح تا نگاه میکن سیر نمیشه از نگاه کردن لذت نمیبره همش اجر اجر هستن اونجا رحمت ها نازل میشن این تبلیغات غلطه ان امروز یک کس از وان از ثواب تماس گیرتون گفت داخل دنور خلاصا دارید میشه 98 روزه میگوین اون از اونجا دار میگه دارن به ما میگن حج نری به فقرا کمک میتونید از دونی دردش بومده که چند تبلیغ داره آین اینا خوب نیستن احمد حج پایی ناوری تا می توانید از برکات مکه بگی مکه مکرمه امی یادگاه اشراق هست و یادگاه آبیدین هست انبیاء الهی هست رحمت اللہ رب العالم اونجا سرازی میشن اونجا قربانگاه اسماعی علیه و اللہ وسلم ماوی ابراهیم خلیل هست حاضر اونجا بودن بیا اونجا بودن زادگاه نبی مکرم اسلام ازادگی اب بکر صدیق عمر فاروق ازادگاه عثمان عثمان بن عفان ازادگاه حضرت علی ابن ایبی طالب از مکه داره ای اونا گواهی من از نداحای انبیاء علیه مصلاة و, و سلام کوها دارن گواهی می داند کمیگا لبی و لبی اینجا ابراهیم گفت لبی اسماعیل گفت لبی حضرت موسا و یونوس گفتن لبی نبی داخل احادیث با نبی کریفه اون یک موسا داره میره لبی لبی گویان داخل بیت اللہ وارد میشه اون حضرت یونوس سوار شطور داری مکه مکرن سرازی ر کوہا تمام کوہا گواہیے ذات اقدس نبی کریم دام اون کوی احد هست وا داخل مدینے منورہ اما غار حرا داخل مکہ مکرمہ غار صو داخل مکہ مکرمہ ہا قدم ہائے نبی کریم و اونہا بوسی میزدن تنکوہائی کہ نبی کریم اونہا و انہا راہ رفتے در مکہ مکرمہ شاہدی میشن عشق بوردی بہ خاک ہائے مکہ مکرمہ عشق بوردی بہ کوہ ہائے مکہ مکرمہ به ہوائے مکہ مکرمہ بہ آب مکہ مکرمہ یہ تھر کو داخل مکہ من دیدم تو رو کرده بود غالبا وقتی خاص بره به بی از مکی بیرون جاهایی که الا دسوی ابو جهل دوستانی در مشرب شده این طرف به قسمت دسوی ابو جهل پشت سفا مروه به خاک ماクセ سجده کرد و بوسه میز خاکا رو عاشق بود بو دیوانه وار بود در مکی میره بیرون اونها که از دنیا چیر میان از اندونزی یا وقتی مکه رو رها میکنن با اشک با چشمهای گریانه اشک جاری جاهایی از دار مکه گریه میکنن دار م و حتی از ذهن دام میکنه میکنن. در که هر شاهدی که میکنن گریه میکنن که داریم از مکه مکرم از بیت الله دارن جدا میشی. اشکها اونجا چشمها آشکوارن و گریه کنند بیت الله رها میکنن. ماما داریم جت تبلیغات میکنیم که اگه مکه نرو، پس کجا بری؟ اروپا بریم ما ممنوعیتی نداری. هر جا دنیا برو اشکال نداره و ایاشی کن اشکال نداره اما محکی مکرمی میگه پول رو اینجا خرج نکن، اینجا خرج کن این چه تبلیغات سوی بر احلی محکی مکرمی شروع شدن خدا نای روزی ایک محکی مکرمی استکلی خاری بیشه وقتی خالی شد عذاب و قیامت می آیا به هر حال به طرف محکی مکرمی هزین حال پول رو جنگ کنی تو لداری از زمین غرانها میگیری جمع کنید و در قله که بیاندازی برای سفر مکه مکرمی آرزو داشته باشید و در رو مکه بار و اون بار بار اون سرزمین بهمان نشان بده یک بار مشرب بشی یک بار کافی یک بار مکه رو ببینی از نزدی و بیت الله رو ببینی سال دیگه طاقت نمی یاری بی میشید خیلی بناد یک عاشق بیقراری عاشق دلسوختی برای مکه مکرم میشه مکه مکرین جوری نیست کس یک بار مشرف شد در حل لباس یا مشرفی شد واقعا حجش قبول شده باشه بیقراری مکه میشه شب روزش مکه مکرم آرامش آرامی مکه مکرم یاد مکه او رو آرامی کند درحال بهتر مکه مکرمه سحرای عرفات جایی که حضرت ابراهیم رفتن جایی که هزار صاحب بیشتر و کمتر اونجا جمع شده جایی که نبی کریم در سحرای عرفات قدم می گذاشتو هوای سحر ای عرفات با تنفس نبی کریم هست خود خاک های سحرای عرفات اون پهنه نبی کریم مستی زدهن جبل رحمت اونجا هست منا هست مشاعر الهی هستن خداوند متعال میگه که اینجا شعائر الهی هستن بری اونجا شار الله را برالی بی نگاه بکنی، چشمای و نگاه بکنی. بری مکه مکرمی. هر نمازی داخل مکه مکرمی صد هزار اجر داره. یک نماز بخون صد هزار، یک نماز دور بخون صد هزار دور خوندی. یک ما اون جواب چی میخوایی شما؟ یک ما اون جواب چی میخوای؟ یک نماز صد هزار عجر داره. یک نمازش حال حساب بکنید. پنج وقت نماز اونجا میخونید یک ماه چه قدری در دا کل دنیا تمام ها را خارج کنی این قاجر حاصل نمیشه داخل مکه مکرمه حاصل میشه مکه مکرمه الله رب العالمین در قرآن فرمان هر کسی داخل مکه مکرمه اونجا ارادی غلط داشته باشه و گناه بکنه عذاب در نخل اونو میچسانید چون اینجا گناه هست یعنی به صورتی مکه مکرمه محترم و مکرم است اگر کسی گناه بکنه داخل مکه مکرمه الله می من او رو عذاب دردناکی میدهم. حضرت عبدالله ابن عباس فرمودند که داخل غیر از مکه مکرمه من پنجا برابر گناه بکنم یک گناه در مکه لکنم گناه مکه سنگینه مکه خیلی مهم و خیلی مکرم هست مدیره منوره بحبه مدیره منوره خود قرارگاه و معبای اشاغ هست جای که ذات اقدس نبی کریم رفتا جایی که بار بار جبریل امین سرزمین مدینه نوره از آسمان ها فرود می آمد می آمد و وحی الهی رو می آورد سرزمین مدینه طیبه منور هست خیلی مؤتح هست آرامش بسیار عجیبی مدینه منوره دارید این همی سر سرزمین شما هست کوه مثل کوه شما نخلیستان هم و آن های شما اما آب و هوای مدینه منوره دیگه آب و هست قابل مقایسه نیست جایی است که ما مالک در شهر مدینه طیبه کافش نمی بوشی. که پای بر قدمگاه نبی کریم نو اونجا که او وقتی در مدینه منوره وارد می شدند غیر وارد می شدند با گفته اسلام علیکم یا رسول الله دل و اونجایی هست که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم در اون سرزمین در آرام میکنن، در سرزمین مدینه طیبه ده هزار صحابی اونجا آرامش اونها در مدینه طیبه هست افغانستان باقی 10 هزار صحابی داره جنگها اونجا پیش اومدن فرشتا اونجا نزول کردن قرآن کریم در مدینه طیبه کامل شده احکام ولای مدینه طیبه کامل شده مدینه طیبه اونجا بود که صحابه کرام با آمده نبی کریم اسمی میفرما روزی که نبی کریم در شهر مدینه پا گذار اعظم منو کلش این هر چیز مدینه نورانی شده و روزی که نبی مکرم اسلام پا چش از دنیا بربستند از لممنو کلش هر چیز مدینه تاریک شده. تاریخ. با آمدن نبی کریم درختان برگ نورانی بودم کوها برگ می زدن نوار و همه یک نواق و بچه کوچه تل البدر علینا من سنیات الودایی شیر می که این ماه تابم برای ما تلو کرده ماه تابم ذات اقدس نبی مکرم اسلام. الله اللہ علیه وسلم بود مدینه سییبه بهترین جا و آرامگاه نبی مکرم اسلام هست وقتی نبی کردیم در جنگ خنین در جنگ خنین وقتی مالها رو تقسیم کردم و به هر نفری از قرشها ست تا شطور اطامی که ست تا شطور. بعض در جوانها گفتن که شمشیرها داره از خون اونها که و شطورها در اونها میگیرند و میروند و ما اهل مدینه دست خالی بر نبی مکرم اسلام با خبر شدن و اونها رو جمع کردن فرمودن که ما حاضی مقاله این داستان چیه مرسیده در شما داری چی میگید شما شما داری میگوید که اهل مکه دارن باشطورها بر میر از مال غنیمت به هر نفس تا داده شده فرمودند که این اهل مکه دران با گاو و شتر و گوسان برمیگردم میروَم و انتون ترجعون به رسول الله ترجعون به رسول الله شما رسول الله در میگیری برمیگردی میروید مدینه طیبه اونها با بر برمیگردن شما با بر رسول الله میگردیم میرویم این نمیدانید که زندگی من در مدینه طیبه بود و مرگ هم داخل مدینه طیبه خواهد بود این خوشخبری خبری برای شما نبی کریم جا گفت مرگ من پیش شما خواهد بود اونها رو خوش خبر داد تا اونها آرام بگیرند مدینه طیبه آرامگاه نبی مکرم اسلام آرامگاه سید عایشه آرامگاه حضرت یو وقت سدیل عمر فاروق عثمان بن افان ازواج متحره حضرت فاطمه بنات النبی ده هزار صحابی در مدینه طیب انجا خوابیدیان مدینه رحان نکنید اگر کل دنیا رو بگردی تمام لذت هارو بیدی اما اگر از زیدار حرم محرومان دیدی هیچ کشوان زیباترین ولی زیستلی چیزها حرمینن از حرمین زیباترین چیز در دنیا وجود نداره سنگ لاط ہے ماکر نگاہ اما لذتی داخل محترمہ مکر در همین جا دنیا حاصل نمیشه اونها از قلب عشاق بپرسید عشاق داخل مدینه به زندگی میکنن خیلی دیوانوار یک ترکی رو من دیدم که حالت او مرا دگرگور میکرد هر روز هر روز یک ساعت پیش در روضه نبی کریم استاد السلام علیکی یا رسول الله میگه این قادر با ادب و این قادر با تواضع استاد که هیچ کس اون ادب داخل مکه از اونها ما ندیدا یک گوشه می میستاد و گاه گاه یک کتابی رو اون میخوند عشق ها جاری بودن عشق میری و گاهی دست رو سینه می‌برست و سلام عرض می‌کرد با خود اون عشقی داشت علاقی داشت اون دل سوخته‌ای داخل قلبش بود اونجا عرض می‌کرد با چه آرد اونجا رسیده خود اگر که ما همینجا عربینم رسول نبی رو مشاهده کنم جایی که نبی کریم ریاض الجنه اونجا وجود داره ریاض الجنه نبی کریم فرمودن ما بین بیت و منبری و من ریاض الجنه از خونی من تا منبر من این تکه زمین از باغ‌های بهشت هست. و منبری علا حوضی و منبر من بر حوض قوسر گذاشته شده از اون ریاض الجنه داخل مدینه منبر فقط در مسجد نبی گینگه جاده گیر نمی جایی جای که امام بخاری در ریاض الجنه نشاس و تمام عنوانات کتاب را اونجا نوشت و, و کتاب تدبین کرده عنوانات با و تراجع عباب را در ریاض الجنه نوشت اونجا برید تکه زمین از بهش آورده شده اونجا که نبی کرده اونجا بار بار در مسلو نبی من به نبی که اونجا زده میشه اونجا اتقاق میکن شاغ مکه رو بیشتر کنید تا میتونی مکه مکرمه مشرح بشید و آرزو بکنید دعا بکنید اللہ رب العالمین همه ما و شمار مکه مکرمه درست آمد مکه مکرمه جای بسیار عزیبی هست این تبلیغات رو نکنید این بی احترامی و بی ادبی هست حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی نو هر سال حجمی کرد یک سال عمره می کرد یک سال تمتب می یک سال عمره می یک سال تمتب می کرد تا زندب و کارج منسوده که اینجوری عمل می کردن نمی باوتن کول آر و بده به فقران کمک بکن اگر کسی حج نریفون زحم یلون بیسم یلون هزینه آیا بی فقران می ده؟ بی پسرش کسی داخل خونهای جارنشین هست درون کمک نمیکنه به برادر کمک نمی به فقران کمک نمیکنه. این بحانی بیش نیست در مردم از حج دور می کنند پس بنابراین هر نمازی داخل مسجد و نبی پنجا هزار یک دارد این حدید ضعیف حدیث ضعیف است، اما حدیثت ای آمده که هر نمازی در مسجد نبی هزار نماز ثواب دارد اونجا اونجا اون اجره رو حاصل میکنی سی چهل نماز و که تمسدایی و تاکین تحریم بگیره که نوتا برائت بزر به اون داده میشه اهل بهش قرار بگیره